پیش گفتار آیا شما هم تنبلید؟ این اتفاق برای همه ی آدم ها می پروژه پیش رو دارید که واقعا مهم است و شما باید بر کامل کردن آن تمرکز کنید. اما شما انواع و اقسام به ها را میآورید تا شروع کردنش را به تعویق بیاندازید. مثلا قبل از شروع آن باید به فلان شخص تلفن بزنید. هنوز کارهای اداری لازم برای آن را انجام نداده اید و یا هنوز نمیدانید از کجا شروع کنید. فرقی نمی‌کند چه دلیلی برای این کارمان بیاوریم. مواقعی پیش می‌آید که در آنها شروع کارمان را به تعویق می‌اندازیم. از این گذشته به تعویق انداختن کارها اثری فزاینده نیز دارد. حتی وقتی که بالاخره موفق می‌شوید کاری را به انجام برسانید، چند کار دیگر سر راهتان سبز میشوند تا جای آن را بگیرند. فرقی نمی‌کند که چقدر سخت کوش باشید به نظر میرسد چرخه کارهایی که باید انجام شوند، پایان ناپذیر است. حقیقتان است که همه ما در زندگی تنبلی را تجربه کرده‌ایم. برای اغلب ما این اتفاق گاه به گاه می‌افتد اما آدمهایی هم وجود دارند که عادت به تعویق انداختن کارها توانایی داشتن یک زندگی شادمان و موفق را از آنها گرفته است. این کتاب برای این دست از آدمها نوشته شده است. هر کسی که در انجام دادن مرتب و منظم پروژه هایش همیشه با مشکل روبروست. بر تنبلی آنقدرها هم سخت نیست. شما تنها باید عادتهای مردمان موفق را در زندگی روزمره خود بکار گیرید. این مردمان هم محدودیتها و ترسهایی همانند شما دارند. اما توانستند به کار موفق خود ادامه دهند، زیرا به خود آموختند که چگونه باید بر تنبلی غلبه کنند. در این کتاب شما با ایده های بسیاری آشنا میشوید که به شما کمک می کنند در زندگی روزانهتان بر تنبلی غلبه کنید. کتاب بسیاری در این باره نوشته شده است که تنها فهرست ساده از راهنمایی‌هایشان را در اختیار شما قرار میدهند اما در این کتاب میآموزید که هر استراتژی ضد تنبلی چرا و چگونه کار می کند. کدام باورهای محدود کننده را از میان میبرد؟ و چطور می توانید آن را بلافاصله فاصله پس از خواندن در زندگیتان گیرید؟ به طور خلاصه در این کتاب با های تنبلی و به تعویق انداختن کارها و چگونگی غلبه بر آنها آشنا میشید درباره نویسنده اسم من SJ اس اسکات است. و نویسنده وبلاگ مشهور های مفید برای زندگی شما هستم. هدف این سایت آن است که به شما نشان دهد چگونه تبدیل کردن کارهایی برای کمک کردن به خودتان به عادت می‌تواند زندگی شما را بهتر کند. من در این سایت به جای موعظه و تکراری استراتژی‌های ساده‌ای را به شما معرفی می‌کنم که می‌توانند در هر زندگی پرمشغله‌ای به کار گرفته شوند. من بر اساس تجربه شخصیم میدانم که بهترین راه برای ایجاد یک تغییر دائمی بنا کردن یک عادت مفید در یک زمان مشخص است. خود من در بیشتر زندگیم درگیر گیر به تعویق انداختن کارهایم بودم. من در دبیرستان و دانشگاه از آن دست آدمهایی بودم که درس خواندن را تا شب امتحان به تعویق می و پروژه های درسیشان را همیشه دیر تحویل می دهند. من حتی نمیتوانستم بر سر ساده ترین قلهایم بمانم. در سال 2003 بود که بالاخره تصمیم گرفتم فکری برای این مشکلم بکنم. وقتی شغل تجارت الکترونیکم را آغاز کردم از همان ابتدا به حقیقت ساده ای دست یافتم. هر انسانی 100 درصد مسئول زندگی خودش است. من دریافتم که اگر میخواهم از فعالیتم نتیجه بگیرم باید ابتدا خودم را عوض می کردم. در عرض چند سال کتاب بسیاری با موضوع بهرهبرری شخصی از قبیل آغاز و انجام کار چهسه پرونده، عادت های زن، را قورت بده، اصول موفقیت، جنگ هنر و هفت عادت مردمان موفق را خواندم و اطلاعات آنها را به کار گرفتم و تاکتیک مختلفی را به امید اینکه به من کمک کنند بر غلبه کنم را امتحان کردم و نتیجه چه شد؟ حالا من مسئول یک مؤسسه که موفق تجارت اینترنتی هستم و, سی و هفت جلد کتاب را هم منتشر کردم. با وجود اینکه هنوز هم کاملا به دانش بهرهوری شخصی مسلط نشده ام اما احساس میکنم در عرض این چند سال خیلی عوض شدم و این نتیجه ی ایجاد عادت بوده است که بر گرفتن نتیجه از کارها تمرکز داشتند. به عبارت دیگر من موفق شدم چندین عادت ضد تنبلی در خودم پرورش بدهم درباره این کتاب اما این کتاب سرگذشت من نیست و هدف از نگارشش این بوده است که شما را در غلبه بر تنبلیتان یاری دهد. مطالب این کتاب شامل هرانچه در این چند سال در مورد چگونگی پرورش آدتهای محکم و همیشگی به انجام رساندن به موقع کارها آموخته است. البته این کتاب میل ذاتی شما را برای به طبیق انداختن کارهایتان از میان نمیبرد اما به شما یاد می تا بدانید این میل چیست، از کجا می آید و چگونه می توان بران چیره شد. مطالب این کتاب در چارچوب خاصی به شما ارائه می شود. نخوست به سراغ پدیده های روانشناسی نهفته در پس تنبلی می رویم. سپس به هفت بحانه ای که مردم برای به تعویق انداختن کارها میآورند میپردازیم و بعد 23 عادت برای غلبه بر این مانع روانی را معرفی می کنیم و چگونگی به کار گرفتن آنها در زندگی را به شما میآموزیم. از های ساده این کتاب به آسانی میتوانید استفاده کنید تا دیگر تنبلی شما را فلج نکند. شما در کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی نقشه قدم به قدمی را برای نتیجه گرفتن از این دستورات کشف خواهید کرد با ما همراه باشید